گرامیان درود بر شما فایل آوایی 11 از کتاب برهان العلیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون رو با هم آغاز میکنیم صفحه 110 عنوان هفته دهم ده بحث جبر و اختیار نقد اختیار مؤمن هفته گذشته مطالعی در آرای علمای بزرگ انجام دادم و به پاسخ‌های بسیار خوبی رسیدم. ناباور اتفاقاً من هم هفته گذشته را به مطالعه همان پاسخها پرداختم و به آنها فکر کردم. مؤمن با اشتیاق به چلوخم شد و با لبخند پرسید: نتیجه چه شد؟ ناباور عجیب است در حالی که تو آنها را پاسخهای خوبی یافته ای من آنها را پاسخهای غلطی یافتم. عنوان آیا هیچ مکانیسمی میتواند اختیار را توجیه کند؟ مومن که لبخندش از بین رفته بود دوباره تکیه داد و گفت بگذار من با یکی از آن پاسخها شروع کنم ببینم تو چه ایرادی میتوانی به آن وارد کنی.» ابتدا باید ببینیم که مراحل ایجاد یک تصمیم چگونه است تا متوجه شویم در کدام مرحله است که اختیار ما انسان وارد عمل می شود. به میان حرف مؤمن پرید و پرسید: تو میخواهیم مکانیزم و مراحل ایجاد تصمیم را باز کنی درست است ؟ ممن. بله، همینطور است. ناباور. اجازه بده پیش از اینکه برای این کار وقت بگذاری، قدری درباره مفهوم مکانیزم یا مراحل ایجاد یک پدیده صحبت کنیم. وقتی می خواهیم چگونگی به وجود آمدن یک پدیده را شرح دهیم، نمیخواهیم با این کار منکر وجود علت و یا سلسله ای از علل برای ایجاد آن پدیده شویم. بلکه تنها می آن پدیده را که پشت سرهم قرار میگیرند تا پدیده نهایی را ایجاد کنند نام ببریم مکانیسم ایجاد هر پدیده هر چقدر هم که پیچیده و غریب باشد نمیتواند به معنی حذف قانون علیت در ایجاد آن پدیده باشد من وجود واجب الوجود را که سعی در اثبات آن داشتی پذیرفتم اینکه آیا در این پذیرش دچار خطا شده ام یا نه مهم نیست به هر حال آن را پذیرفتم اکنون می توانم بگویم که آن واجب الوجود به دو طریق ممکن است که یک پدیده را خلق کند یک آن پدیده را به واسطه زنجیره ای از علت و معلول ها خلق کند مثلا پدیده علف را خودش خلق کند و آنگاه پدیده الف علت تامه پدیده ب باشد پس ناچار پدیده ب به وجود آید و آن نیز علت تامه پدیده P شود و به این ترتیب سلسله علت و معلول ها ادامه یابد تا پدیده ی را ایجاد کند در این حالت با خلق پدیده الف، پدیده ی به طور حتم به وجود می آید. لذا مسئول خلق پدیده ی همان واجب است که پدیده ی الف را خلق کرده است. پدیده ی چاره ی جز به وجود آمدن نداشته است. اگر خلقت به این شکل صورت گیرد، دانستن مکانیسم ایجاد پدیده ی به معنی باخبر بودن از پدیده است که پیش از یه باید یک به یک به وجود آیند تا نوبت به ایجاد پدیده یه برسد. هر چقدر هم که پدیده های پیش از یه متعدد و متکثر باشند و هر چقدر هم که چیدمان پدیده های متعدد قبلی برای ذهن ما پیچیده باشد به این معنی نخواهد بود که تخلفی در قانون الیت روی داده. و به این معنی نخواهد بود که سر این رشته ی علت و معلول ها به واجب الوجود نمی رسد. دو راه دومی که واجب الوجود می تواند پدیده ها را خلق کند این است که پدیده ها یک دیگر را به وجود نیاورند بلکه خود واجب الوجود همه آنها را یک به یک و پی در پی بیافریند یعنی اول پدیده الف را خلق کند بعد پدیده ب را خلق کند و به همین ترتیب تا آخر در این حالت واجب الوجود همچون یک انیمیشن ساز عمل می کند. انیمیشن ساز خودش هر تصویر را جداگانه می سازد و آنها را یک به یک پشت سر هم قرار می دهد. اگر چه ما با نگاه به انیمیشن تصور کنیم که تصویر اول و آنچه در آن درانه است، علت وجودی تصویر بعدی است، ولی در حقیقت تصاویر پی در پی هیچ ارتباط اللی با هم ندارند. و همه آنها معلول دست انیمیشن ساز هستند اگر جهان به این شکل خلق شود باز هم علت هر پدیدهی خود واجب الوجود است و توصیف مکانیسم ایجاد یک پدیده تنها به این معنی است که ما شرح می دهیم قبل از آن پدیده چه پدیده هایی توسط انیمیشن ساز ایجاد می شوند. در این حالت هم مکانیسم خلقت هر چقدر برای ذهن ما پیچیده باشد نمیتواند مسئولیت خلق پدیدهای را از واجب وجود سلب کند. آن است که تمام آن پدیده ها را و نیز تمام پدیده های قبلی و بعدی آنها را خلق می کند و هیچ پدیده ای نبوده و نیست که چاری جز به وجود آمدن داشته باشد. مؤمن و ناباور دقایقی را به سکوت گذراندند سپس ناباور ادامه داد اگر قرار باشد مکانیزمی پیدا شود که نشان دهد واجب الوجود ممکن است مسئول خلق پدیده ای نباشد و آن پدیده خود به خود به وجود آمده باشد و یا یک پدیده همچون من و تو مسئول به وجود آمدن آن باشد این قضیه به دو نتیجه منتهی خواهد شد اولا قانون علیت قابل نقض می شود در نتیجه می توان فرض کرد که لحظه نخست جهان نیز بتواند بدون وجود واجب الوجود به وجود آمده باشد در این صورت دیگر نمی توان اثبات کرد که باید واجب الوجود یا به قول تو خدایی جهان را آفریده باشد اینجاست که می توان گفت چرا نپذیریم که یک هستی مانند دیگر پدیده ها علت اول جهان باشد؟ در این صورت فرض وجود خدا کاملا دل به خواه خواهد بود می شود فرض کرد که هست یا می شود فرض کرد که نیست اگر پدیدههایی همچون میل، اراده و یا عمل ما ممکن باشد که مستقیم یا غیر مستقیم مخلوق واجب الوجود نباشند و تنها مخلوق یک پدیده دیگر مانند انسان باشند میتوان پذیرفت که لحظه اول جهان هم ممکن باشد که مخلوق واجب الوجود نباشد ثانیا پدیده ای که سرسلسله خلقتش واجب الوجود نباشد نشان میدهد که در یک جایی از این مسیر یکی از پدیده ها از عدم به وجود آمده است در این صورت حالتی وجود خواهد داشت که در آن پدیده‌ای بدون نیاز به علت به وجود می‌آید در این حالت به وجود آمدن این پدیده ارتباطی با پدیده‌های قبلی نخواهد داشت چون آنها علت ایجاد این پدیده نیستند و ناچار باید بپذیریم که در جایی از سلسله علت و پدیده پدیده‌ای از نیستی به وجود می‌آید به این ترتیب اینکه این پدیده چه باشد ارتباطی به چیستی پدیده های قبلی نخواهد داشت. اگر اراده ما انسان ها از این دست پدیده های بینیاز به واجب الوجود باشد، باز هم نمیتوان به وجود بهشت و جهنمی برای پاداش و جزای اعمال ما قائل بود. چرا که اراده ما از طریق سلسله علیت معلول واجب الوجود نیست. و خودش ناگهانی و بدون ارتباط با نفس ما سر از وجود در میآورد و به جهان هستی پا میگذارد. یعنی تمام گذشته ما که منجر به ایجاد نفس ما در لحظه اراده کردن شده است، ارتباطش با اراده ما که خود به خود و از نیستی و عدم به هستی میآید قطع می شود. پس هر اراده ممکن است بکنیم بدون اینکه بتوانیم حدس بزنیم، آن اراده چه خواهد بود؟ طبعا جزا و پاداش دادن به چنین امیال و اراده های خلق و سایی عادلانه نیست. مؤمن متوجه منظورت از این حرف آخری نشدم ناباور. خواستم بگویم چه قانون علیت باشد و چه نباشد وجود بهشت و جهنم برای پاداش و جزا غیر موجه است. مثال میزنم. تو الان اینجا نشسته و فنجان چای نیز در مقابلت قرار دارد. اینکه تو در لحظه کنونی تصمیم بگیری آن را بنوشی یا نه، بستگی دارد به اینکه نحوه خلقت چگونه باشد. در حالت اول فرض میکنیم که واجب الوجود تنها لحظه نخست جهان را خلق کرده و پس از آن دیگر دست از خلقت کشیده است. به این ترتیب هر پدیده‌ای که او خلق کرده باشد علت پدیده بعدی خواهد بود و از آنجایی که در صورت وجود علت تامه یک پدیده خلق آن پدیده حتمی است پس پدیده بعدی نیز به طور حتم ایجاد گردد و به همین ترتیب این سلسله ادامه می‌یابد تا به این لحظه می‌رسد که من و تو اینجا نشسته ایم. در این لحظه معین است که در لحظه بعدی تو چه تصمیمی درباره چایت می‌گیری و حتی باید گفت از روز ازل و ابتدای خلقت نیز معین بوده که تو در این لحظه چه تصمیمی بگیری ما این را تعیون یا دیترمینیسم می نامیم. اگر کسی بتواند به تمامی و بی به همه خصوصیات و مختصات هستی در لحظه فعلی علم و اشراف پیدا کند، می به طور دقیق پیش بینی کند که تو، در لحظه بعدی چه تصمیمی خواهی گرفت البته این مشروط است بر اینکه اشراف یافتن او موجب تداخل با پدیدهها نگردد مومن منظورت از تداخل چیست ناباور ببین اگر تعین یا دیترمینیسم برقرار باشد و اگر من بتوانم جهان لحظه کنونی را با همه مختصات آن بشناسم و تو را و تمام خصوصیات درونی و محیطی تو را و تمام جهان اطراف تو را به طور کامل مورد شناسایی قرار دهم و قوانین حاکم بر علیت بین پدیده ها را نیز بشناسم یعنی مثلا علوم فیزیک شیمی و فیزیولوژی را کاملا بدانم خواهم توانست به درستی پیش بینی کنم که تو در لحظه بعدی نسبت به فنجان چایت چه تصمیمی خواهی گرفت اما اگر در هین کسب این اطلاعات جهان را به هم بزنم به ای که مثلا تو متوجه شوی که به چه اطلاعاتی دست ام و متوجه شوی در باره تصمیم تو چه پیش بینی کرده ام این میتواند منجر به شکست پیش بینی من شود و تو ممکن است تصمیمت را عوض کنی ممکن است شرایط را به ای به هم ریخته باشم که دیگر تصمیم پیش بینی شده را نگیری در سطح کوانتومی هم مثلا اگر بخوایم جایگاه و سرعت یک الکترون را دقیقا اندازهگیری کنیم تا بتوانیم جایگاه آن را در ثانیه بعدی پیشبینی کنیم ارسال یک فوتون و برخورد آن به الکترون و بازگشت آن به سوی ما اگرچه ظاهرا جایگاه الکترون را مشخص می کند، اما موجب انحراف مسیر آن و تغییر سرعتش می شود و امکان پیشبینی دقیق محل آن در لحظه بعدی از بین رود. بنابراین اگر قاعده دیترمینیسم یا تعین برقرار باشد، هرچه از لحظه کنونی اطلاعات بیشتری جمعآوری کنیم و هرچه در این میان جهان کنونی را کمتر به هم بریزیم، دقیق تر میتوانیم لحظه بعدی و یا آینده را پیش بینی کنیم. حال اگر یک هستی همچون خدای عالم و دانای تو وجود داشته باشد که بتواند بدون به هم خوردن جهان آن را به طور کامل بشناسد، می تواند بداند در هر لحظه چه پدیده ای ایجاد خواهد شد. اگر این خدا خودش جهان را در لحظه اول خلق کرده باشد نه تنها میداند که در هر لحظه چه پدید به وجود می آید، بلکه مسئول هر پدیده است که در هر لحظه پس از لحظه اول جهان به وجود می آید من جمله مسئول تصمیم تو درباره فنجان چاید تصمیم تو از ازل برای چون آنی معلوم است و نه تنها معلوم است بلکه خودش آن را اراده کرده است تصمیم و اراده تو یکی از بیشمار شمار است که مسئول آن همان واجب الوجود است این در صورتی بود که نحوه خلقت چنین باشد که پدیده ها علت یکدیگر باشند و واجب الوجود پس از خلق اولین پدیده دست از خلقت کشیده باشد. حالت دوم خلقت این است که واجب الوجود همچون انیمیشن ساز عمل کند و هر لحظه از جهان را و هر پدیده ای را خودش خلق کند. در این صورت واضح است که تصمیم تو در مورد فنجان چایت را خودش خلق خواهد کرد و مسئول آنچه انجام میدهی هم خود آن واجب الوجود انیمیشن ساز است که این خلقت های پی در پی پدیده ها را با ضابطه انجام میدهد و ممکن هم هست که بدون ضبطه انجام دهد. اگر خلقت پی در پی ها را با ثبطه انجام دهد و ضبطش مثلا همین قوانین فیزیک باشد، در آن صورت آینده را می توان با دقت پیش کرد و تصمیم تو نیز قابل پیش خواهد بود. اما اگر این انیمیشن سازی را بیذابطه انجام دهد، در آن صورت پدیده ها به شکلی بی پشت سر هم قرار می و پدیده اراده تو درباره فنجان چایت قابل پیشبینی نخواهد بود اما چه بازابطه و چه بی مسئول تمام پدیده ها خود آن واجب وجود است عنوان آیا اگر الیت برقرار نباشد مسئله روز جزا حل می شود؟ در حالت سوم خلقت که البته غیر ممکن بودن آن را پیشتر ثابت کردی، فرض می که بعضی از پدیده‌ها ها اصلا از قانون علیت پیروی نکنند و خود به خود سر از عدم برآورند و به هستی پا بزارند. در این حالت حتی آن واجب الوجود هم هر چقدر علم داشته باشد نمی پیش بینی کند که اراده تو چه خواهد بود. زیرا علم نمیتواند به چیزی تعلق بگیرد که مطلقا نیست و قرار نیست که از هستی به وجود بیاید و با هیچ قانون و زابطهی با هستی مرتبط نیست در این حالت پدیده اراده تو نه با پدیده های طبیعی در ارتباط است و نه با واجب الوجود در ارتباط است. لذا کاملا تصادفی و بیقاعده و غیر مترقبه به وجود خواهد آمد مثلا تو در این لحظه تمایل زیادی به نوشیدن چای پیدا می کنی. اما به جای اینکه در راستای این تمایلت اراده کنی که دست ببری تا فنجان چای را برداری ناگهان اراده می که میز را بلند کنی و به گوشه پرتاب نمود اراده تو نه مخلوق پدیده قبلی است و نه مخلوق مستقیم واجب الوجود است، بلکه به شکری غیر منتظر از عدم سروراورده است. طبعاً در این حالت اراده تو پتیده است که هیچ مسئولیتی نسبت به آن نداری زیرا به طور خلق و سایه از نیستی به هستی آمده است. اراده تو هیچ ارتباطی با تمایل تو ندارد. ارتباط اراده تو با تمایلت قطع است. با این روال ممکن است ارتباط عملی هم که انجام می دهید با اراده قطع باشد و آن نیز به شکلی بی ربط از عدم سر برآورد به این ترتیب که در این لحظه میل به نوشیدن چایی در تو به وجود می آید که آن را پدیده شماره یک می نامیم. اما در لحظه بعد اراده می که میز را پرتاب کنیم. این اراده را پدیده شماره دو می نامیم که از سربراآورده است و نه محصول پدیده شماره یکی است و نه مخلوق واجب وجود انیمیشن ساز در لحظه بعدی عملی که انجام می دهی این است که دست فرزندت را گرفته و در خیابان راه می روید. این را هم پدیده شماره سهمیاممی. می, می بینید که عملت نیز ارتباطی با ارااد که کرده بودی ندارد چرا که عملت هم خود به خود سر از آدم برآورده است. بدون اینکه پدیده شماره دو و یا واجب البجود علت آن باشند. میل تو نوشیدن چای بود، اراده تو پرتاب میز بود و عمل تو قدم زدن کنار فرزندت بود. در هیچ شکست پدیده گفته شده، میل، اراده و عمل تو، تو را مستحق جزا و یا پاداش از سوی واجب البجود نمی کنند. مسئول هیچ کدام از این پدیده ها نه تو هستی، و نه واجب الوجود بلکه مسئول هرسه آنها عدم است و یا بهتر است بگوییم مسئولی وجود ندارد خلقت به هر یک از سه شکل گفته شده که باشد و یا حتی اگر ترکیبی از سه شکل ذکر شده باشد وجود جزا و پاداش اخروی از جانب واجب الوجود باوری ناموجه و, و خلاف منطق و عقل خواهد بود عنوان آیا سیستم غذایی و تنبیه در دنیای ما باید برچیده شود؟ مومن، اینطور که تو میگویی در هیچ کدام از حالات ممکن و غیر ممکن خلقت، انسان مسئولیتی ندارد. پس باید نظام غذایی و پاداش و تنبیه را جمع کرد. دیگر آدم های خوب و بد فرقی ندارند و هر وقت که از کسی بدی ببینیم، باید بگوییم که کار خدا، یا کار طبیعت بوده و به هر حال باید انجام می شده. باید بپذیریم که آمل بدی خودش تقصیری ندارد ناباور تا حدودی درست می گویی. بعد از صورت گرفتن یک کار خوب یا بد اگر هر کدام از نظام های و یا انیمیشن سازی بر جهان حاکم باشد می همین را گفت اما ما انسان ها تا حد زیادی متوجه شده این که ظاهراً نظام حاکم بر جهان یا دیترمینیزم و یا انیمیشن سازی زابط من است پاورقی یافته های فیزیک کوانتوم نشان می دهد که احتمالا در سطح میکروسکوپی دیترمینیزم فرو می ریزد و رابطه اللی بین پدیدها از بین می روید ادامه مطلب چرا که همیشه می توان به فرمول و زابطه بین پدیده پیشین و پدیدهای پسین دست یافت ما همیشه سعی کرده ایم که این فرمول ها را در فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد پیدا کنیم و با شناسایی پدیده کنونی پدیده های آینده را بر اساس این فرمول ها پیش بینی کنیم. در مورد پدیده های شر طبیعی مثل زلزله و سیل چه آنها را مستقیمن کار واجب وجوده. انیمیشن ساز زابط مند بدانیم و چه آنها را کار واجب الوجودی که در روز از جهان را آفرید و سپس آن را به حال خود رها کرد بدانیم و چه اصلا کار خدا ندانیم و همه را کار طبیعت بیشعور بدانیم نتیجه یکیست ما سعی میکنیم با شناخت درستی از ضوابط و قوانین حاکم بین پدیدهای پیشین و پسین جلوی زرر بیشتر و حادث شدن شر بعدی را بگیریم سد می سازیم و ساختمانها رو محکمتر و مطابق با اصول زلزله بنا میکنیم و از این قرار. به همین ترتیب برای جلوگیری از اعمال شرورانه انسان ها دست به اقداماتی همچون آموزش و پرورش و تراهی سیستم قضایی می زنیم. اگر غریزه انتقام و حس کینه خود را که طبیعت در ما نهاد است کنار بگذاریم و فقط به این بیندیشیم که چگونه میتوان جلوی شرور بشری را گرفت ممکن است علاوه بر اتکاب آموزش و پرورش باز هم از سیستم غذایی و های تنبیهی استفاده کنیم اگر متقاعد شویم که جزا و پاداش یکی از فرمول های جلوگیری از رفتار شرورانه بعدی و موجب ترویج رفتار مطلوب بعدی است ممکن است از این فرمول ها استفاده کنیم اینکه ما برای آینده بهتر دست به مجازات و یا پاداش دادن به دیگران بزنیم به این معنی نیست که عملی متناقض با باور به دیترمینیسم یا تعین انجام داده باشیم اما اینکه واجب وجودی که خودش همه اینها را به وجود میآورد بخواهد از پدیده های معلول خودش انتقام بگیرد و کسی را به واسطه اعمال و عقایدی که خود آن واجب الوجود خلق کرده مجازات کند و تا ابد بسوزاند. و یا به بهشت برود و به او جایزه بدهد قابل توجیه نیست. اگر ما آنچنان بر یک کودک مستولی باشیم که بتوانیم تکشتک خواسته ها و امیال و افعال او را خودمان ترحی کنیم و اجرا نماییم. قابل توجیه نیست که بعد از پایان کار مجازاتش کنیم واجب الوجودی که تو از آن صحبت می کنیم چیرگی تام و تمامی بر همه امیال و اراده ها و افعال انسان ها و اصلاً میل و اراده و فعلی به اراده آن واجب الوجود به وجود نمی آید. اجازه بده بقیه بحث را هفته آینده پی بگیریم. میخواهم به آنچه گفتی بیشتر فکر کنم. گرامیان جا در صفحه 118 فایل آوایی 11 از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه. تا درودی دیگر بدرود.